من جان پروفسور منشل جمالی رو خط دارم و به ایشون درود میفرستم و خوش آمد به تالار بنیاد فرهنگی ایران و نوروز رو به ایشون یک بار دیگه شاد باش میگم استاد میکروفون در اختیار شماست بپرمین دوستان امشب دلم میخواست که به طور تفصیل راجع به نوروز صحبت کنم ولی نیروه های من و اندازه کافی نیست که از عهده چنین کاری بر بیاد و نوروز یک مسئله نیست که امروز و فردا باشه در فرهنگ ایران هر روزی نوروز بوده معنای زمان در فرهنگ ایران با مفهوم نوروز حیوند دو دانا حالا اون چیزی را که من امشب می‌خواستم طرح بکنم اینه که چرا نوروز ما نفرین شده است چرا نوروز ما اون معنای رو در این جشن این مسئله نوروز را اغلب پژوهشگران از کتاب شاهنامه استفاده می‌رود. و این روایتی که در شاهنامه آمده است، این روایتی است از نوروز که در زیر نفوذ الهیات زرتشتی در دوره ساسانیان به وجود آمده است. و در اینجا و در این داستان اگر کسی با نظر دقیق ببینه متوجه میشه که مفهوم جشن به کلی تباه و زشت داخته شده و خرد و خواست انسان برای ساختن مدنیت به کلی زشت و بیعرضش و کار ساخت چرا من این سؤال رو البته این سؤال رو کسی بایستی با آشنایی با مفهوم زمان در فرهنگ ایران با شناخت مفهوم زمان در فرهنگ ایران دنبال بکنه اون وقت برایش کاملا روشن بشه و البته من درم میخواست که امشب اگر دوستان حوتل داشته باشند تا نداری که ممکنه این کار رو بکنم ولی مفهوم مشعله زمان و مفهوم زمان یک مقدار تفکر انتدایی تر رازم داره شاید بعضی از بوشتان از این جور مسائل پرهید ولی من اول نقطه دستم روی زخم میگذارم که اول همه متوجه این نکته بشوند بعدش به محفوم زمان رو اینها به پردازیم. در شاهنامه دیده می شود که در روایتی که در شاهنامه از نوروز میاد البته ما این رو بعدا خواهیم گفت نوروز جشن فرست نافه بود و هیچ, و هیچ ربطی به جمشید نادر فرست نافه فرست همون مثل فرست انگلیسی یعنی نخستین و نافه در معنای اصلیش یعنی توهیگاه و زهده برای اینه که نافه به این معنای دومش به کار میده ولی یعنی نخست این زاد در نوروز سیمور زاده میشه یعنی خدای ایران شروع میکنه آخست آخست زاده شده و این گیتی میشه یعنی خدا تبدیل به گیتی میشه این نخست این روز آفری نشه. در جه های دیگه خدا عمر میکنه خرق میکنه با خواستش کار میکنه اینجا خود خدا بیتی زاده میشه یعنی در زادن بیتی به این خوب البته یک است که به کلی با عدیان نوری در تضاد و تناقضه چون که بیتی شدن خدا وقتی دیگه اصلا مسئله یه این سکولاریت و روحانیت و این مسائل ترخی نمیشه حالا در اینجا مفهوم دیگری از زمان هست چون که خدا عملا در جهان می روید پس بنابراین این مفهوم سکولار که با مفهوم گذرا بودن زمان کار داره زمان فانی میشه چیزی را از دست میده میگذرد انسان این زمان که گذشت نابود میشه ولی در اینجا خدا داره گسترده میشه افزبوده میشه روحیده میشه رو در زائیدن در فرهنگ ایران شادی و جشنه هر روز جشن میشه هر روز نوروزه چون که خدا هر روز زاده میشه پس بنابراین این مفهوم حالا من اینجا فقط یک اشاره کردم بعدش میخوایم در تک تک مطالب برو بریم فقط اینجا به طور کلی یک چیزی باشه که همه در دست داشته باشن محسوس میشه برای اینکه که مفهوم جشن رو دنیا همیشه جشن زمان همیشه جشنه با این تک همه اجان نوری مخالف با این که خدا دنیا میشه الان هم همه مخالفه حالا این ما از نقطه ای رو که میخوایم انگاش روش بگذاریم و اول زخمانشون بدیم بعدش از این زخم که بیشتر ما رو برمیانگیزه به مسئله اول برگردیم اینی که در شاهنامه دیده میشه که جمشید بعد از اینی که با خرد و خواستش کارهای مختلف میکنه خشت میسازه که مدنیت درست کنه شهر درست کنه گرما به درست کنه بعدش از سنگ خواهر سنگ های قیمتی بیرون میاره از پزشکی دواداروهای پزشکی رو کشف میکنه بوهای خوش رو کشف میکنه فلان و فلان میآید که همه کردنی ها چو آمد تدید همه کردنی ها چو آمد تدید به دیگه جوز از خیشتن کس ندید پس از این اون عرهایی که با خلد خواستی کرد چیشو غیر از خودش دیگه در دنیا هیچ کس ندید چون کارهای وی آمد به جای به جای مهین برتر آورد پای از اینجاست که از جاش اونجایی که مناسبش هست اونجایی که سیزاوارش هست خواست بالاتر بره, خود بره. آز اون رو گره و این از این برطر از اون که باید بشود میخواست بشه حالان میبینید که اینجا در اینجا یک تختی میسازد که چون خواستی دیر برداشتی زهامون به گردون برپست اینجا در فرهنگ ایران در بونه هر انسانی چهار نیروس در زمین انسان چهار نیروس این چهار نیروس اینها چهار پره هما چهار پره سی شده شد این انسان در بینش وقتی که میخواست دیشه وقتی شاد میشود این مرغ چهار پر پرواز میکرد معراج داشت به آسمون میرفت و برمیکرد در اینجا این تبدیل میشه که این کارها رو که کرده در اینجا درست مسئله دیب یک انصار کار میاد این خودش دیگه پرواز نمی نمیکنه بلکه این انصار کار زشت میاد این تخت رو به امر او برمیداره در بر اون دوشش میگذاره میره البته جاهای دیگه گردونه حالا این یعنی دست دیب وارد میشه یا دست در تباکاری جشن با طباخ کاری آموختی میشه و این رو که میبینیم سر سال نو هرموز فروردین یعنی روز قرمز از ما فروردین برای سود از رنج تن دلزکین بزرگان به شادی بیا راستن میو جام رامشگران خواستند چنین روز فروخت از آن روزگار بمانده از آن خسروان یادگار این جشن اسم جز روز فرخ بوده روز خورم بوده که بعدش این رو تبدیل کردن به نوروز جمشیدی حالا اینها رو باید بحث کرد که چرا این رو شده ولی در اینجا میشه دید که در این چنین سال 600 ست همی رفت کار ندیدند مرگن در آن روزگاه در این عملا جمشید با خرد و خواستش بهشت رو ایجاد کرده چرا؟ برای خاطر نیم که می شود دید که که هم خوش زیستی شادی رو ایجاد کرده که خرداد باشه هم دیر زیستی که که بدون مرگ همه زیست می اینها ویژیگی های بهشته. حالا ولی در اینجا اگر در رکھ بشین می بینید که جشن با تمرد و فقیان پایان میابند در اینجا جمشید این با این همین پرواز چیز پیدا میکنه به جز از خیشتن کس ندید و در بالاخره می می‌گوید یک یک و یک تخت مهی بنگرید بگید تید جد از خیشتن را ندید منی کرد اون شاه یزدان شناست زگزدان بپیشید و شد ناسپاس حالا اینجا منی میکنه منی کردن ببینید اینجا این درست این واجه که منی همه چیزها رو رسوا میکنه و پاش میکنه در اینجا جشن میرسه به بیهودی جشن میرسه به طبیان و فرو افتادن از اون اوچه که هنر در جهان از من اومد پدید که من نامبر تخت شاهی از جهان را به خوبی من آراستم چنان جهش که من خواستم حالا این میبینیم که اینجا خالد و منی کردن ازاسا به معنای در پهنوی و در عوستا و در سانسکریت منیدان منی کردن به معنای اندیشیدن در پجوریدن از راه پژوریدن و جستجو اندیشیدن هنوز در کربی معنای منی کردن یعنی پجوریدن کردن. هنوز باقی بود اینه که میدینی درست جمشید نباید منی مکنی یعنی چی؟ یعنی نباید از راه خرد و از راه خواست خودش دیچی رو بسازه این درست چون که اندیشیدن معراجه اندیشیدن این حالا این تئوری معرفت رو در ایران که بگوییم دید که اندیشیدن معراج و این نترها در اینجا به شیبهی ترد شده یعنی انسان ارواح که بخواد خودونه در عالم دینش این در معرفت الهی این کسی حق نداره. هم نداره فقط یه عده اشخاص خاصی حق دارم فقط فرض کنید از دید الهیات زده فقط زردوشان که کاری رو حق داره بقیه حقه این پوتولی رو نداره این که ببینید اینجا جمشید چارقروش اول ازش میگیرن سوار یه تختی میشه که مالو یکی بسازن این پر خودش نیست در که اونجا این چیچه تو مرق چارپری تا براسمان پری تو از کجا ره بامون اردمان این چهار چارپر این زمیر انسانه این زمیر انسان هم در تمام بندهش و سایر چیزها در یستها و اینها دیده میشه که زمیر انسان چار نیرو داره و این درست هم این چار پر بود و اینی که در اینجا دیده میشه که پرواز پرواز شید برای عموم افراد جمع ببینید جمع شید نه تنها در سانسکریت نخستین انسان بوده بلکه در فرهنگ زن خدای ایران در فرهنگ سی ایران هم نخستین انسان بود و این نخستین انسان بوده فترت و طبیعت انسان رو مشخص میکرده یعنی هر کسی میتواند پرواز کند هر کسی میتواند مدنیت بسازد در مدنیت رو حرکت کند ببینید مثلا با جای دیگه که فقط نکته پیشی رو اشاره بکنم که در وندیدار دیده میشه جمشید خشت می سازی ولی به دستور دور عبور این البته تئوری ولایت فقیه یعنی چی؟ اونجا اینجا می بینید ابتکار بفرمون دیوان ناپاک را به در آمیختن خاک هر هران که گل... زی... گل آمد تو بشناختن سبب خشت را کار بود ساختن پوری قالب خشت بساختن اینجا اتکار خشتسازی به خود جمشید داده میشه در اونجا اتکار خشسازی اهورام در داستان وندیداد میاموزد به جمشید که تو اینجور خش را بساز ولی در اونجا می‌بینید که نخستین آدم ایرانی که جمشید باشه با پای خودش با دست خودش تا با پاش هر رمیشیطاره مثل کارگر و بعد خش رو خودش با کار خودش می‌سازد البته خش یا دونر خش با خشتره سر کار داره اصلا از همون ماده است و خشتره حکومت و حاکم و مدنیته کلمه شهر ما امروز از این اومده که ایران شهر یعنی امپراتوری ایران خشتره معناش هم شهر بوده هم حاکم و حکومت خانا ساختن خش مقصود این نیست که خش میزازه مقصود اینه که حکومت و حاکمیت و اینها رو مبتکرشونه اون در اون داستان بندیداد این کار رو به احورام از دانست بزدادن آموزگار این اندیکسی شدن و ابتکار رو از جمشید گرفتن معنیش که این آخوند ها این موبد ها هستن که باید درس حکومت درس حکومت رانی به شاخ به رئیس جمهور به هر کسی دیگه بدن ببینید این به کلی با اون چموری که پرواز چار فرق پر پر داره که هر انسانی میتونه اینا همه چی هست اینا حالا یه اینه که جلوتر میبینید با یک موجه که چناغذات داستان طبقات رو میاد اینا داستان طبقات دوره ساتانی که در اینجا باستاب میشه و اینجا میخواد بگه که, در... که جمشید این کار رو کرد یعنی چی؟ یعنی این فطریه در انسان ها اینا تمام چیزهاییست که تحریب شدید من این کردن جمشید تحریب منی کردم، یعنی اندیشیدم، در پجوشدن با این خیش داختن با این مدنیت ساختن با این حکومت ساختن خب این این بر خلاف توری بلایت فقیه اون روز بوده این که اقمل شنجی کاره بکنه پس بنابراین اینا ببینید اینا همه تحریفاتیش که شده ما من یک کتابی 14 سال پیش نوشتم به عنوان در ایران اینکه حقیقت را در فرید و در فرید حقیقت را می آه. این کتاب رو اگر پیدا کردید بخونید برای خاطر اینی که نشون اینه که ما نبایستید متون و مطالب دور وریفیم یا بسوزانید این برزد فرهنگی دارید ما بایستی اون چشم خوشیدگونه را پیدا کنیم اون معنی کردن ایرانی رو منیدن جستجو بر کاوش جستجو کردن خود اندیشیدن وقتی که بر این پایه مانند رستم به هفت خان بریم هفت خان آزمایش در این هفت آزمایش به چی می‌رسیم به چشم خورشید گونه یعنی چی یعنی تشخیص میدیم ما این از همین ها از لابلای این تحریفات و شدیه ها به چی پیمی بریم به که نورود چی بوده جشن چی بوده زمان چی بوده فرهنگ ایران چی بوده نیاز نیاز به رشتاخیل فرهنگ اتیل ایران نیازش که جامعه رو در جرفایش تکان داده و فرا گرفتی به دیگر اون رها رو خواهد کرد این نیاز نیاز نیرومند به جستجوی خود انسان و ملت چیزی چیزیست که از بونه وجودش میجوید انسان اون چیزی نیست اون ثابت و تصویر صفت م... و محتمی نیست نه ملت انسان اون چیزیست که از بونه وجودش میجوید ولی برای برآوردن این نیاز مردم در گام های نخستین گرفتاره یک دروغ و تحریف میشه ها هنر و بزرگی ما را تقدیر کردن زشت ساختن و گناه و جرم بزرگ خوندن شما ببینید اینجا خرب و خواستن رو که جمشید با مدنیت را می شد میکنند این گناه این جرمه باید شما در نظر داشته باشید که در در بندهش همین الهیات زرگوش همین روز اول که هرمز باشه در فردردی می در این روز است که اهریمن وارد دنیا میشه وارد میشه یعنی اولین نخستین روز آفرینش روزی است که اهریمن خودش رو به دنیا میاره یعنی درست همین هم این ببینید اینجا نخستین روز روزی است که جنگش میکنه دور میکنه میگه من با خرد و خواست خودم میتونم مدنیت و حکومت و حاکمیت و اینها رو بسازن اینها جرمه اینها را تا توانستن نکوهیدن یعنی بزرگترین هنرهای ما را نکودن، فرهنگ ما را نکودن. تدیه جشن یه جشن نوروز که در فرهنگ ایران بون زمان و آفرینش شمرده میشود فراموش نشود می نوروز بون زمانه نه آغاز عجب نمشمره نمره یک بعدش دو میاد بعدش سه نه بونه زمانه یعنی ریشیست که همه زمانها از اون میروه همه آفرینش از اون میروه این را آمدن چی؟ به کلی زشت و تباق و من نوروز ما ببینه چی شده نوروز ما آغاز جرم آغاز گناه ما شد. خرد و خواست ما حق نداره حکومت پسازه حق نداره مدنیت پسازه موبدان زردشتی که رابطه بسیار نابهنجاری با جشن به طور کلی و جشن نوروز به بیچه داشتن این تدیده را در روایتی که از دوره ساسانیان به دست فردوسی افتاده است به کلی مصر و تحریف داده می‌بینید که در همین اشارات که کردم به امروزه در, در درک پدیده جشن نوروز همه پیوشگران همه این مقالاتی رو که می‌بینید ردی پشت هم توی این ویبسایی ها و روزامه ها چ همه از این بخش تحریب شده شامنامه الامی همه نمیدونن که این داره تحقیر میکنه خرد و خاصه انسان جشن نوروز جشن گناه انسان. انسان نباید بیاندیش انسان نباید بپشوه اینا معنی کردنه مسئله حقیقت تراموش نشبه همیشه مسئله و حقیقت در, در دروغ و فرید هست. هر حقیقتی و فرهنگی در اساسی در اثر کششی که داره بر فاصله از قدرمندان و قدرت پرستان ببینه تعطر قدرمندان حکومتتی و سیاسی نیستن حکومت حکومت پرستدان و قدرت فرستان دینیام هست ابزاری در هر حقیقتی و فرهنگی ابزاری برای پیش برد هر دفا ساخته میشه این از که باید راه و روش کشف حقیقت رو در دروغ و فریب و پیدا کرد حالا جشن های ایران همه جشن زمان بود نه جشنهای های بزرگ اشخاص نه جشن اتفاقات بزرگ داری نه جشن زادروز مثلا روز شیشم که روز خرداد هست نوروز که نوروز سلطانی ترین جشن نوروز در روز خرداد این روز خدای خرداد زن خدا خرداد خدای سعادت خدای امید در این روز بعدش گفتن زردوز در این روز متولد این جشن اصلا بزارترین جشن ایران در, ای در این نوروز در اینجا به آج خودش میرسید چون که خرداد و عمرداد حضورترین ایدارهای سعادت ایران هست حالا ما تا ما معنای فرهنگ خود را از زمان نشونستیم بدونیم که زمان یعنی چی در فرهنگ قدیده جشن که در ایران معنا و قایت زندگی بوده هست نخواهیم فهم. برای درک دقیق مفهوم زمان با همین نوروز آغاز می نوروز برای ما یک روز از زمانه. نوروز نقطه آغاز روزهای دیگر در سال که به دنبال آن که پس از دیگری می آید البته پس از گذشتن نوروز هرچه روزها بیشتر می شون. نوروز دورتر و کونه تر ببینید هنوز من دارم راجع به نوروز می دنم صحبت می کنم شما ها احساس میکنید می کنید که نوروز گذشته این برزد ایده نوروز. نوروز طبعا اینجور فراموش میشه. شود باید در انتظار سال دیگر. و نوروز دیگر و نوشدن طبیعت به طور کلی در انتظار در انتظار چشم درست این مفهوم زمان مفهوم آنها نبوده است یعنی مفهوم آنها زمان برای آنها نوروز تنها روز یکم سال تازه نبوده است بلکه بون زمان بوده است که روزهای بعدی یکی پس از دیگری از اون بون میرویند و میزایند ببینید فرهنگی خیلی مهمه زمان در فرهنگی ایران چه؟ نوروز یک تقم و یک است و روزهای بعدی شاخه های هستن که از این بن می روین اینجا مفهوم کاملا مفهوم زمان بر میکنه با مفهوم ها ببینیسان مشخص می شود که زمان روند رو و بلندی یافتن و رشد و پیشرفت و فراخی یافتنه یا هیست. البته ببینید این باید ما معانی رو دقیقا درک کنیم این ما چیزایی رو که با هم ترکیب می کنیم اونا اونجور ترکیب نمی کردن. در فرهنگ ایران دو پدیده رو رویدن و زایدن با هم به شیبه این همانی داده می که معنای آفریدن رو از اون می گرفت از نوروز روزهای دیگر می رویم و میذایم و به سخن دیگر آفریده می شوند. و می افتاید رو ایدن حالا ببینید این هر چیزی که زایید شما امروز جشن زاد روز می گیرد. این دو ایده فرنگیتان رو ایدن و زاییدن همیشه با شادی و جشن حالا می بینیم که بعدش هر روز در فرنگیت ایران نورود است از سر زاده می شود پس هر روز جشنه این چه معنی داره؟ ببینید در فرهنگ در حتی در فرهنگ یونان خیلی جشم داشتن اما به این اندازه نداشتن تمام سال تمام روزها در فرنگ ایران جشم داشتن در فرنگ ایران به زمان یا زمان بیکرانه زرون میگفتن به زرون بلی زرون دارد حالا ای این دا دقیق بشید می‌بینید که از توی به کاشتن ذریتونتن تنتن میگفتن از سوی دیگر به زائدن ضرروونی کل می گفتفت ها و, و پرارروی ها به دیار یا آنچه زن باردار به شدت با آن حواس می کند میگوید و به گل خیری که گل رام است ایرانی ها برد زروانی می یعنی گل زروانی فراموش شده می شود، این رام نخین زاده سی موت و درست در استستان خراسان به واجه یکم هم زاروانمی. چون مقصود این است که اون چه زاده شده است اون چه درای نخوص بار زاده شد. پس به خوبی دیده میشود که زروان زروان یا زمان با ترکیب رویدن و رای زاییدن کار دارد این دو مفهوم رو با هم میامیزد این خیلی مهم است دو مفهور رو با هم بیا می و از این استنباد کنید که آفریدن چید این که حالا نقطته که از اینجا مطلب ما شروع میشه و دقیقا بعد خیلی در اون تحملگر این است که دیده میشه در این متون یاد زمان بیکرانه است البته ما چقدر معانی روز این بیکرانه رو میفهمیم. و وقتی دچار فوری دچار اشتباه میشه چون که وقتی میتونیم یک چیزی بیکاران است در یا بیکارانه است نمیدونم چی، بیکاران است یعنی امتحان نداره این ما این معنی را امروز ازش می زمان بی انتا زمان بی آغاز و پایان ولی هنوز کرانیدن در کردی یعنی گسستن و پار کردن پس ببینید زمان بی کرانه یعنی چی؟ یعنی زمانی که همه این تکه های زمان به هم چسبیده و به هم آمیخته و از هم همکار ناشدنی هست ببینید خیلی محفوظم اینجا ببین مثلا زمان وقتی از هم پاره نمیشه نمیگذره ببین سکولر که همش رون مفهوم زمان پانیه گریه باید که زمان میرده نه این زمان پاره نمیشه به هم میده همه یه درخت بزرگ میشه هی هر روز بالا میره جایی با از فانی نمیشه وقتی زمان را نمیشه از هم هست و پاره کرد این معناش چيی براخد که اون موقع میگفتن از این یک تخت همه ی جهان رویده میشه معنیش چی میشه معنیش اینه که هیچ چیزی و هیچ جانی و هیچ بخشی از جهان را نمیشود از هم پاره کرد چون همه از یک تخم میرویند جهان جان همه یک جهان است ببینید معنای دو جهانه وجود نداره همه های جهان آسمان آب زمین گیاه جانور انسان خدا همه به هم متصل آمیخته همه پنش داره هم همه به هم کس اینا با دقت ما نشون میدید. این اندیشه هست جهان به هم متصله همه به هم پیبسته و به هم با بنده است که این اندیشه در سپس در عرفان ایرانی میماند وقتی خدا و همه جهان جان به من متصلن و با من آمیخته، پس چرا من که در که جدا شده دی کنم پس چرا مردوم هستم جدایم پس چرا نام جدایی هست و هر انسانی در اثر این احساس پاردیس که می نالن چون در واقع او از جهان جان و از خدا جدا نیست یک شعر از مولوی می همین می این مسئله این کششو تنش بین این احساس متصر بودن به احساس و مسئله جدایی میگوید همه در وقت شکفته همه با لطف تو خفته همه در وقت بگفته که خدا تو کجای همه در... همه تو وصلت وصله با خدا بگوید که خدا تو کجای همه همخوابه رحمت همه پرورده نعمت همه شاهزاده دولت شده در دل گدایی همه ایناسا دوغه ده دایی رو چون من این وحس بدیدم وقتی که من این وحس رو همه جای دنیا دارم. چون من این وحس بدیدم همه آفاق دویدم تلریدم نشنیدم که چه بود نام جدایی ببینید اینجا در مولویز که در تمام دنیا می و هیچ جا نام جدایی رو نمی ببینید این همه فرهنگه وصل جهانه همه زمان به هم وصل. در این جهان وصل این حقیقت وصل و آمیخدگی و به هم وصلگی را نشناختن و حس نکردن و دم از جدایی زدن مسئله بنیادی همه است. در واقع همه از اصالت خود بیخبر همه بیخبرن اینها بون خدا در همه هست همه با وجود اون که متسلن ولی احساسی انفصال و حسستگی کرانیدن میکنه زمان کران من وقتی که این فلسفه این زمان رو میدیم یک زمان کران من درست میکنه الهیات ندرستی در این زمان کران من یعنی همه از هم بارم در اینجا چه احریمن بارم احریمن وقتی که زمان کران من وارد میشه احریمن هم بارد میشه درست نقطه آغاز یعنی نوروز ز... نقطه برش در ساعت ایده ای را دیدیم که از در فرهنگ ایران پذیرفته نمی شد. ما در زمان کران زندگی می کنیم. این ایده الانیات زرگشتی این مفهوم به زمان بیکرانه از کجا آمد ما اینو با باید بره این که این خیلی مسئله رو روشن می واژه واجه زرون که گفتیم اگر دقت بشه می بینیم که معناش یعنی بند نی زر بند بند همون کلمه بنده زر در اصل همون نی بوده چنان که این ببینید این کلمات رو همه رو تحریص کرد در تو در کردی هنوز هم زر به میگم که همون زر باشه زر رو به نی در ترکی به زر آلتون میگم آل زن خدای زایمانه که سیمور باشه تون یعنی زهدان یعنی چی؟ یعنی زهدان سیمر زهدان سیمر نیه این در ایران به نه ناوندی زر ایره میگویان زر ایره ایره یعنی ستا. یعنی نه یعنی سیمور زر ایره. زمان ببینید اینجا خوب من اینا رو گفتم که به زرون یعنی بند نه زمان بند نه است در این مفهوم دقیق بشه زمان بند نه است برای ماه بند نه ارزشی نداره مفهومی نیست تصویر نیست ولی این اون قول عاده مهمه اگر میخواییم فرهنگ ایران رو بشنسیم باید این بند نی رو بشنسیم چونکه این باقل عاده تمام مفهوم جانبینی ایرانی و زمان و فرهنگ ایران رو بشنسیم این بند نی این تصویر معنای بسیار جرفی داشته بند نی اساساً محل اتصال دو بخش نی به هم در فارسی وقتی میگن بند نای یعنی فاصله میان دو بند نی هست. حالا. درخت زمان نایی بود است که پر از بندهای نیست آنها اینجا فکر میکردن که این بند،, این بند این بند این بند اصل آفریننده در اون شده درختی که ری، روی از سی مور نشسته بانه. حالا وقتی اینها حقیق داشتن وقتی یک بخش روید و به انجامش رسید این بند ببینید برای ما وقتی میگه به انجام رسید یعنی به آخر رو به پایان و به نهایتش رسید درست همینجا ببینید همینجا ما محبور وارونه کردیم اونا چیزی دیگه از انجام می انجام آخر و پایان و انتها نیست بلکه هر انجامی جایگاه اتصال و جایگاه آفرند این خیلی مهمه یعنی چی؟ ببینید تمام وفت خومه قرآن و طورات و فرای این کتاب های مقدس رو همه بیران می چرا؟ میکنه چرا میگه کمال یک چیز کمال یک چیز نهایت و پایان آن چیز نیست یه چیزی وقتی بی, بی شد این کمال نداره بلکه اصل میان اصل آفریننده است این نقطه کمالی رو که ما میگیم باها انجامه درست اینجا چیه؟ اصل میانه اصل آفریننده که بخش دویوم آن چیز رو می آفرینند با حالا ما چند تا نمونه روشن میکنیم این مهمه بنده نی چنان چه خود همین واژه انجام ببینید این واژه انجام در فارسی به معنای پایان و آخر هست. نهایت هست انتحار ولی درست در کردی هنجامه معنای لورات در, در یک زبان دیگه معنی دیگه نگه زبانهای ایرانی همه را که دور هم بگذاریم کنی چیزا را میتونیم کش کنیم این معانی دیگری که دارن اینا برای اندهای دیگر همین طبیبه هستن نارو دور نماز ریگم دو ها این زبان ها مهم تحقیقات در اینا ها پنگل عاده مهم هنج کردم هنجامه هنج کردم یعنی چی؟ یعنی به هم و دن و متصف انجام هر چیزی اونجا نیست که آن چیز پایان میابند بلکه است که به چیز دیگر بسته میشود افزود ببینید نه تنها بسته میشود اینجا نکته جالب اینه که این تنها لولا نمیشه افزوده بر این معنایی که از بین رفته از است که این نقطه این بند این بند درست خودش اصل آفریننده تازه. به همین علت دبین این واجه ها برای ما یک لطف و یک م... بسطه دیگری پیدا میکنند مثلا همین کلمه انجمن این ایران شناس ها ترجمه میکنند که از گامه یعنی که گام برداشتن به یک سو همه هنگ آمد یعنی به همه گرده هم میاید نخیص این قلعه است اصلا اینها ها از فرهنگ ایران رو نمیشنسن. چرا هنجه هنجمن اصلا هنجمن هست یعنی نینوی هنجیدن یعنی یعنی نینوی متصل سازنده به هم دیگه یعنی اصل اصلی ایر، ایر اصل یه بقیقی اصل آفریننده اندیشه ها در سنتز زهانه ها با هم انجمن هنچی انجمن نیست که جای هم گرده هم می آید یه چیز اوبجیمتیبه امروز هست. این ایرانی این چیز این اینجور امجکت گویته نداشت انگه همین هنگ همون کم بوشه یا ممر آب از سفانه دن بوشه کم بوشه کم تم یعنی ذهدان بوشه هم یعنی ذهدان دن بوشه کما میگیم درست همین ببینیم اینا اینا نیست همین بحثه نیست برای عرص که جریان و رو از یک جا به جای دیگر متصل می‌شد، انگ به همین علت به شیره و اصاره که ماده چسبنده و متصل سازنده بود انگ می گفتن انگبین حالا بیر از این انگ... انگاشتن و انگاردن همه از همین هنجیدن و انگیدن دیدن که چی باشه متصل ساختن تصاویر و داستان و اتفاقات من. حالا پس چی بود؟ پس انجام زمان مقصود ما این بود از این هاشیه ها که میدین یه خورده ملبوس سر بکنیم جریان رو پس انجام زمان آخر و پایان و نهایت زمان نیست بلکه این انجام ویژگی اتصال و بند شدن دارد افسوده برای این انجام یعنی انجام زمانی که ما میدین هنج هنگ میکنه هماهنگ میکنه و لورا میکنه و از این باشه ویژگی آفریننده زمان هیچگاه پاره نمیشود این مفهوم گذرابوگرز زمان این باید دید که چطور پیدا شد این مفهوم رو در فرهنگ ایران نداشت زمان هیچگاه پاره نمیشود بلکه همین چه امتداد میابد. کدا کجا در جان امتداد می‌یابد پاره نمیشه. اگر اگر به زمان پاره میشه یعنی جان اصلا پاره میشه یعنی خدا اصلا پاره میشه خدا تک تکش ببینین مفهوم به بعدش همون شب غم از همینجا اومده این به معنای چیه؟ به معنای راست که جان و هستی هیچگاه مرگ نداره بلکه اون چه هست اون چه جان هست همیشه از خود در انجام خود را از نومی آفرینه حالا نوروز هم همین چیگی یعنی هر روز از نو زاییده می شون. ما هر روز نوروز داشتیم روز اول سال اون همه روزها بود هر روز با این نوروز هر روزی نورو همین. چه دقیقه برای چی؟ برای که هر شب نوروز اون دنیا با همه هم رام هست هم بهرام هست هم ارتا کرده هر شب رام و میان شب ارتا فرادت و بهرام و اینا اون دنیا هست و این پایان که میریسی در انجامش این ستا هست. حالا در میان، در میان دی این رو ما این مفاهیم رو دنبال می کنیم با دقت. در میان منازل قبر منزل بیست و یوم رو بندش منزل کنیم. بیست و یوم رو بند می این باجی بند رو که به کار بودیم ببین در ببینید این در این باجها تیغ و شمشکی معناه فیض باقی مونده. این نیست که در جاهای حساس از بین کنند در جاهای راه پیدایش تحریفات و مصرده که در گوش موشه ها یاد فرابده آدم دروگوک هم حافظه یه جایی یادش میده اینه که این اصل جسدجوی تحریفات همیشه در یه جا را میشه ما فقط با چست داشته باشیم ببینیم در کجا معنای واقعیش بده در اینجا؟ در منازل قمر منزل ریست رو در پهلوی یوغ میگن حالا بند همون یوغ ببینید اینجا چه از برای ما کند، کشف میشه بند یوغه. هنوز ما در فارسی به یک, یک جفکاف که به جهت زراعت یا بردن گردونه و عرابه به کار میبریم میگوید یک بند حالا چرا این یوغ میگفتن؟ این همون البته فراموش نشبه یوک همون کلمه یوک های که معنای معالی خیلی زیاد داره از جمله وحش رو اتصال و ایرانیان بر این باور بودن که آفریدندگی گردونه است که دو نیرو که همون سی و بهرام باشن می و این را ببینید این, این یوک استهای خیلی زیاد داشته این اسمان را که ما یاد بگیریم خیلی از این نکات را در مطور متون پهلوی فوران پیدا می‌کنی من یه چند تا اسم رو می‌برم که مثلا این یوق این چوکین و بهرام که با هم دنیا رو می‌کشیدن چرخ آفرینش رو به حرکت می آردن. این اینو هم سیم می‌گفتن سیم خشم که امروز ما میگیم سیمان یا سیم برق یعنی چیزی که ما واسه می‌کنه ولی این سیم معناش این بوده که دو چیز که به هم متصل باشه نغره هم خود در اثر اینه که دورنگ پیدا میکنه برای این خاطر به سیم گفتن یکی لاوه که ما ترجمه میشه به همزاد ولی که کلمه لب همون لاوه چون که دو چیز هم همیشه عشق به هم میوردن چون لب هایی شما همیشه لاو میکنن با هم اشق میوردن لبن واجهه قشنگی ای لاو این یعنی دو چیز جفت یکی یوغه یکی جفت این دو یکی هم همزاد اغلب این کلمه همزاد رو در همه این متون پرجمه کنن و اتبار ما رو به به معنای دوغلو همزاد معنای دوغلو تنها نداشته همزاد به معنای عاشق و معشوق داشته چون که همیشه جفت اول اون جفت نخستین جهان همیشه عاشق و محشوق یکی کلمه همزاد در متون موت این بحث خیلی جالبیه هم در آثار در های زردوش هم در آثار مانی چون که اونجا این کلمه همزاد به کار برده میشه و عملا همه این کلمه همزاد رو درست وارونه تفسیر میکنن و معنای دقلو در حاضریتی که جایی در میان دو تکه از اما چی هست؟ یک بند هست. میان دو بند. این سه در این بند که نماد عشق آفریننده هستن هستن ببینید این اصل آفریننده که در هر نقطه از اما هست نه تنها در روز که ما میاریم این بود که پایان و انجام روزها پایان و انجام روزها در, اسم در همون بندهش یک نگاه دقیق بخش چارم بکنید میبینید که در اون بخش سر شب و میان شب این رامو و بهرام و ارتاپربرد که سیمر باشه در هر شبی بودم یعنی چی؟ یعنی شب پایان شب این ستا هست و وقتی اینها بند محل اتصال یک روز به روز دیگر نورود داره آخرش چه بند داره اتصال داره که روز بعدی رو می هر روزی یک بندنای بود که انجامش یک بند می روی و از این بند روز دیگر پیدرفت می آفر. همین گونه هر ماهی این خیلی نوخواد جالب است هر ماهی در پایانش این بند بود. که یک ماه سی به ماه سی روزی دیگر میبست و ماه دیگر از همین بند از همین ستا یکتا میروید همینسان در انجام زندگی مرگ نبود بلکه سه روز پس از آنچه مرگ خانده میشود بند نایی بود که، یعنی این سه،, سه روز بود که هنوز هم این زردوشتی این سه روز رو نگه میدارن بند نای بود که از آن زندگی تازه میروید این در هنم هست البته در میان هر انسانی نیست این خیلی مهم است در میان هر انسانی نیز همین بند بود چون که جم جم یما یعنی دوقلو، قلوب یعنی دوقلو، یعنی چی؟ یعنی همون معنای همزاد رو داره. یعنی معنای دو قلوب نیست بلکه همزاد به جم یعنی نخست این انسان باشد به معنای اصل مهرج که می آفریند در هر انسان این ون یا این ون آفریننده هست که همیشه میبافد و میریسد و ایجاد میکنند ببینید اینا هم باقی موندن این ون مثلا در کردی وناندن به معنای نهادن اساس ایجاد کردن کوک کردن ساعت چرا تا از سر زمان در خوب دیده می شود این در این مفهوم زمان اصلا خبری از سناغو اصلا از گذرابودن نیست این مفهوم بودن رو الهیات زردشت آورده است، و این میدونید اسباب خیلی درد سر بزرگی بعدش در پیدایش زروانیست در دوره ساسانی شد که به کلی مفهوم خرد رو از بین برد و ما حتی از مزداغو اینها رو به اندازهی به حدی پایین آورد که حد نداشت و در زمانی آمد که بدون خرد بود مفهوم زمانی در دوره ساسانی چیری شد که خدای بی خرد است که نمیداند کجا مهد برزد کجا کین ببرد و آه، کارش آه، این چل... در تمام شاهنامه شما با این مفهوم زمان رو میشید ما با مفهوم زمان بی خردی که هیچ برپای خرد کار نمی کند و این درست یکی از بزرگترین علل شکست ایران شد مفهوم زمانی که همیشه جشم بود. همیشه نیروی آفرین نمید همه از بر... وقتی مفهوم زمانی آمد که درش اصلا خرد نمید در ضد خرد بود. اصلا هر کاری رو میکرد کارو وارونه بود حالا من این از اینها میگذرم و اه اه اه به دو دوستان و اه اه چون که این مسئله بسیار است، باید نشون بدیم که دور تبعید و طرز خدایان از زمان شد و و این مسئله چه تیر بختیهایی در فرهنگ ایران داشت و همین جشن چیز نکته جالبی رو که خوب است در این باره فقط بگویم که این نوروز تنها موبدای ما این کار رو نکردند بلکه در همین اسپانیا این جشن استرن یا استرن که جشن نوروز ما باشه در این در اس جنوب اسپانیا تبدیل شده به هنگام کفاره و توبه این این جشن رو اینجا می‌گوام پنیکنسیو که جشن ببینید جشن درست تبدیل میشه به توبه از گناه درست همون نوروز جشن معنی کردنه انسان باید توبه بکنه انسان دلنگ می‌کشه دحاک میاد آدم رو دونیمه میکنه جشنیه که انسان باید کفاره بده جشنیه دروز اینا در هم همین عباد رو پیدا کرده در اینجا و, و اینه که ما این جشن اساس سکولاریته اساس اینه که در یکی از دانشمندان آلمانی میگوید که جشن اساس شرک و, و خواهناخواه تمام اد این ادیان نوری بر ضد این مفهوم جشن برخواستن و سعی کردن این جشن ها رو تا ممکنه به مقدسین خودشون به جشن های شخصی بکنن و از جشن طبیعت در بیارن و جشن زمان در بیارن و تبدیل بکنن به جشن اتفاقات و جشن اشخاص و جشن چیزهایی که در تاریخ میفته در صورتی که این مفاهیم نبوده من چون این خیلی بحث بسیار درازی هست به همین امشب اتفاع میکنم چون که نیروی منم در واقع بیش از اینها نمیرسه با بودینی که این خود این مسئله شاید ده ها شب باید در بارش بحث کرد سپاس بذارم استاد البته این اجازه نمیده که ما دوسته تا پرسش بکنیم از شما بله بله ام شما بیش از یک ساعت و پنج دقیقه سخنرانی کردید یک ساعت رو دارد و هم نشدید بیشتر انرژی هم دوستم بره خواهش بگم استاد شما در سخنان تو فرمودید که جمشید رو درست کرد منظورتون بهشت زمینی بود دیگه بهشت مینیوی بله بله این قضیه آقا بینید این محکوم زمانی که ما گفتیم بس چی بود انسان بون زمان رو در خودش داره دو تو دنیا نیست هر کلمه مینو که در فارسی به کار میبرن مینو یعنی تو مینو میروه میشه درخ اون بالاش خوشه میشه اونجا را میگن مینو این که آسمان جای خوشه بود یعنی مینو میشه مینو میشه مینو یعنی چی در فرهنگ ایران در اون جهان همه به هم بستگی داشت این جمشید در این ایدهی که در شاهنامه اومده این ایدهش اینه که با خرد و خاص انسان میتواند با اندیشیدن میتواند بهش رو ایجاد بکنه و درست در وندیداد جمشید همین کار رو میکنه البته و حتی حتی زردشت و پسرش در برای جا جاوید شدن به این در اونجا پذیرفته میشه به شرط که اونجا رحور روحانی باشد تضییه اینه که در این ایده در جاهای مختلف در در الهیات چون که جمشید نخستین انسان فرهنگ ایران بوده برخوردهای دائمی بوده از این روی برخورتهای کاملا مختلف شده اینه که برخورتهای مختلف سبب ایجاد تناقضات شده متوجه است تناقضات سبب میشه که ما به خوبی مفهوم تصویر جمشید رو میتونیم پیدا بکنیم جمشید در, در اونجا در اونجا هم ایجاد بهشت میکنه بهشت زمینی بله. پس فلسفه مرگ چی میشه اینجا استاد مردن این فلسفه مرگ گفتم که دیدید ای که این سروز رو در این مسئله مرگ البته خیلی مسئله تورانی من الان نمیخوام وارد بشم این رو چون که یکی از جالبترین ترین مسائل فرهنگ ایران است، این در فرهنگ ایران زمنگی هیچ وقت از بین نمیره حتی خود همون بندهشم هم که این الهیات زردوشتی اونز رو صحبت میکنه مرگ کار احیمنه همان. احریمن میخواد که این ده ده مرگ رو بیاره ولی این بونه انسان دارای چیه دارای چهار جوز چهار جوز که گفتیم و به یک جزء تنه وقتی اون چهار جوز زمیره وقتی که میخواد احریمن احریمن زدار کامه مرگ رو بیاره در همون آن این چهار تا به چهار خدا میپیوندن و هر کدام در باز جاویدان می ولی قضیه اینه که مسئله این مرگ رو چجور حل کردن و آخر گودر بودن مسئله ترک کردن مرگ اون وقتی گودر بودن با مفهوم ورود اهریمن سر و کار در دنیا. این حالا بعد اینه یک مفهوم یک بحث خیلی جداگانه راجبه زمان و مرگ و های بله, بله. بله فکر موانم بسیار جالب باشه یه بخش شروع بزنیم برای هم مسئله مرگ در فرهنگ ایران چه مهمه بله کما من مسئله جاش رو نگفتم با قول بودا میکنم که ما در این دنیا بحث زندگی برای ما که واید میکنه حالا ولی بحث مرگ بحث اساسیه و اساسا پراموش ها چه مرگ همون کلمی مرغه که این رو بحث میکنیم که این در مرگ همون مرغ چارپر پر پرواز میکنه نه اینه که در بینش در شادی بلکه این روز این اینجا متوجه شدید که در پس از مرگ بر فاصله سه روز فاصله میگیرن میگویند در این سه روز روان با تن میمونه طبق الهیات کنونی زردوشتی اون وقت این ایده البته از قدیم میاد این ایده بین دو نایی بوده یعنی در این، اینجا آش... آفرینندگی زندگی تازه میشه که انسان تحول پیدا میکنه به این خدایان و و این و... و این بند نایی رو که بعدش امروزه پرجمه های میگن پل پل جینواز پل کلمه پر، پرعده بوده وقتی پرعده همون کلمه قردی امروز معنی نیه چون که سابقا پل ها رو از نیه میساختن برای موکنش سابقا برخه انحنود هم در آسیا میبینی در ویتنام و پلان اینا اگه ببینید تو کورسار ها و اینا از نیه پل میسستن و این اه با، اه با، چیز با این پل جین, جین یعنی تین یعنی رهدان با یعنی باد که ایک از اسمای سیمور بوده اون وقتی یعنی یعنی انسان از نای سیمور رد میشه این به سال سیمور میرسه یعنی به نظر شما استاد یک نوع تحول مرگی که از دوستان همین پرسشو دارن ها اینه بذاره یک شب به طور با اشارات و اینا الان صحبت کنیم خوب یه شب را مرگ هم در تفکر ایرانی و شیوه های مختلف البته مثلا در این فراموش نشین این, این آین های مرگ و اینها در ایران متفاوت بوده و همه از همین ایده برخواسته و زردوشتی هم همین مراسم رو داشتن یعنی همین مراسم رو اتخاظ کردن که تو فرنگ ایران بوده جاهای مختلف متوابط بوده که این که کرکس می اومده می خورده یا سگ یا فران اینها اینها چه رابطی مفهومی داشته می ما اول بذارید بحث جشن رو با با... بله <تصفح> سپاسگزارم استاد من دیگه بیشت از این وقت شماره نمی گیرم بسیار سپاسگزارم که یک بار دیگه به ما فرصت دادید که از در ریز دانش شما ما بهرمن بشین و از طرف دوستانم از شما سفاستگذاری میکنم و من به شما شب خوش میگم استاد بدرود خوش باشی کن.